در اوبه دور ای در توکمان صحرا مرد فقیری زندگی می کرد به نام تاشلی تاشلی تنبل و ترسو بود صبح شب بیخ دل ننش بود هر جا ننش میرفت دنبالش را میافتاد افتاد هم اونو شناخته بودن و تاشلی ترسو داشت می کردن شبیه از شبهای محتوی تا به زننه زنن تاشلی از خونه بیرون زد تاشلی بدون ماحتری دنبالش را افتاد به ماه قشنگ نگاه کرد و به ننش گ ببین، شب مثل روز روشنه، دلم میخواد الان کاروانی که از هندوستان برای شاه توفه میاره گیرم بیافته و تاراجش کنم تا زندگیمو رو سرا سامون بدم، دنش با تعجب به تاشی نگاه کرد و گفت، از کی پهربون شدی؟ تو و تاراج کاروان اونم کاروانی که از هندوستان برای شاه توفه میاره؟ تاشلی هزبانی شد و گفت چرا قبول نمی کنی که از من هر کاری برمیاد. اونقدر قرقر و اعتراض کرد که حسلی پیرزن سر رفت. نقشه کشید و به خونه برگشت. تاشتی ترسو هم فوری دنبالش دوید. اما پیرزن جلوتر از اون وارد خونه شد. در و و پشت در خونه رو گذاشت تاشتی هرچی عجز، ناله، گریه، عبدا پیرزن در رو باز نکرد. گفت که تا تو, تو باشی دیگه لاف نزنیم تاشلی از ترس و لرس خودشو محکم به درش بود دم صبح که خوابش گرفت هوا باز و بازتر شد مگزهای زیادی روی سر و صورت تاشلی نشسته بودن اما از بعض تنبل بود این تاشلی مگزها رو از صورتش نویزد بره اون طرف مگس ها انقدر زیاد شدن به چشم و دهنش نیچ زده بودن که دیگه خستش کردن خستش کردن اونم بالاخره یک کشیده محکم به صورت خودش زد و ده تا پونزده تا مگس رو زمین افتادن و بقیهشون فرار کردن رفتن چشمش رو که باز کرد مگس رو کشته دید دیداره چند تا مگسو رو کشته خودش کنم احجاب پهلوونی بودم و خودم خبر نداشتم من اگه ترس سردم که نمیتونستم اینقدر کشت و کشتار را بندازم دست از ننش کشید و رفت پیش قاضی شرح پحلوانیشو تعریف کرد عشق همه رو شرح داد و گفت آره اینطوری شده من زدم چند تا مگس رو کشتم و اینها و از قاضی خواست که بهش عنوان پهلوان او ببده قاضی و تاشتی رو میشناخت و با خبر بود که ترسوه اما برای اینکه که دلشان عشقنه یته که پارچه سفید برداشت و این شعر رو نوشت شکست ناپذیر است تاشتی دلیر هزار تا به یک ضربه دارد به زیر پارچه رو به دستش داد و با یک اولاق او رو روانه کرد تاشتی پارچه رو سر چوب بست و مثل یک پرچم به دستش گرفت یه شمشیر زنگ زدن پیدا کرد و به کمرش بست و با الاغش را افتاد رفت و رفت به یک گوشه از جنگل رسید یه دفعه برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد او بهش رو ندید ترسید گفت من نباید بترسم هرچی باد و باد بازم میرم جلو پیش رفت رف رف رف تا داخل جنگل شد خیال ورش داشت فکر میکرد پشت هر درخت و درخچه نر دیوی خوابیده که قصد جونشو داره تاشتی برای اینکه ترسش بریزه شروع کرد به آواز خوندن و اون سر و صدایی را انداخت که حیوانای جنگل پارو به فرار گذاشتن در همون موقع پیرمرد هیزم شکنی پشت اسبش هیزم بار میزد و میخواست راهی او بشه که های تاشتی به گوشش خورد فکر کرد که نر دیوه پشت درخت بزرگی پنهان شد تاشتیم اومد تا به اسب پیرمرد رسید گفت شکر خدا اسبم برام رسید از علاقش پیاده شد باره هیزمو و گذاشت پایین و افسار اسب و گرفت سبار شد و راه خودش ادامه داد بعد از مدتی از جنگل خارج شد تا به اوبه ناشناسی رسید نزدیکتر که شد دید سر و صدای ساز و آواز میاد افسار اسب و به سمت سر و صداها کشید و به جمعیت زیادی رسید دید بله جشن عروسی برپا هستش خودشو نباخت. از اسب پیاده شد، پرچم رو به زمین کاشت، داخل اتاق شد. همه چپ چپ به غریبه نگاه کردن و گفتن "بشین، غذا بخور، شیرینی بخور، بفرما." مردی از بیرون داد زد: "آهای مردم، این غریبه تاشتی پهلوانه." مرد شیر روی پارچه رو خون، اونایی که توی اتاق نشسته بودن اومدن بیرون. پرچم تاشتی پهلوانو دیدن. دوباره به اتاقش برگشتن و بالای مجلس تاشتی رو بردن و نشوندن و شروع کردن به تعریف و تمجید از اونو و از آوازه پهلوانیش. تاشتی پهلوون که خود رو خوب میشناخت وقتی که این همه تعریف و تمجید و شنید پیش خودش گفت یعنی من یه همچی کسی بودم و خودم نمیدونستم یه قیافه جدی به خودش گرفت و روی تو هم گرد و تاشته پهلوان چند روزی در اون اوبه موندش در این مدت هر زنی که پسری به دنیا می آورد اسمش تاشلی می زاش. بعد از میهمان از اهالی اونجا تشکر کرد و سوار اسب شد و به راهش ادامه داد رفت و رفت تا به سرزمین سبز و خرمی رسید از خستگی زیر سایه درختی دراز کشید و اسب و در علفزار آزاد گذاشت قافل از اینجا که مثلا بابا این سرزمین سرزمین دیوان هفت برادره خبر نداشت دیگه داشتی به زودی خوابش برد چون خیلی خسته بود در همین حین یکی از دیوا که اومده بود که به زمین سبز و خرمشون سر بزنه تاشلیل رو دید پیش خودش گفت این آدمیسا چطور جورت کرده پا به سرزمین ما بذاره بعد بدونی کاری بکنه رفت شیش شیشت بردر خودش بهشون خبر داد. هر کدوم گرزشون رو برداشتن و رفتن سر وقت تاشلیل تا خواستن با ضربه گرز کلش و مثل هندونه داغون کنن چشمشون به شعر روی پارچه افتاد جا خوردن و با ترس به هم نگاه کردن و گفتن این تاشتی پهلوونه از حیبت نامش چنان به خودشون لرزیدن که گرز از دستشون افتاد و دندوناشون مثل دوتا سنگ به هم خورد و تق تق صدا میکرد. از این صدا تاشتی از خواب پرید دستی به چشمانش کشید و دیوار رو دید که گرز به دستن و بالای سرش واقی مثل بید میلرزید. خیلی ترسیده بود دیوان هفته برادر این لرزیدن و رنگ پریدگی رو نشونه خشب تاشلی گرفتن کار خودشون رو یه سره دونستند. بعد گفتن چه کنیم چه کار کنیم این الان کار ما یه سره میشه دیگه تک تک به خاک افتادن پای تاشتی رو بوسیدن گفتن ای تاشتی دلیر خبر پهلوانیای تو به ما رسیده به سرزمین ما خوش آمدی خیر مقدم عرض میکنیم ما هفت تا برادر بنده شماییم به قصر ما بیاییم خواهرمونم منتظر شما هستش تا از شما پذیرایی کنیم تاشلیب اتفاق هفتبرادر راهی قصر شد و چند روزی میهمان دیوان بود از قضا در همون روزا که در قصر خوش میگذرون تو همون حوالی ببر آدمخوری پیدا شد خواب و خوراق ها مردم گرفته بود مردم که فهمیدن تاشتی تو اون قصر زندگی میکنه با دیوها زندگی میکنه از تاشلی خواستن که ببرو بکش این خواب و خوراک رو از ما گرفته تاشتی تا اینو شنی ترسید و لرزید رفت که سوار اسبش و فرار کنه دیوا پشت سرش دویدن و فکر کردن که میخواد به تنهایی بره ببر به جنگه جلوشو گرفتن گفتن تاشلی پهلوان درست نیست که شما تنها به جنگ این ببر بری اجازه بدیم ما هم در رکاب شما بیایم بعد اونو با اسبی بادپا تیز رو نشوندن و شمشیر تیز و هم بهش دادن و همگی به سمت مخفیگاه ببر حرکت تاشته پهلوان جلو جلو میرفت میتاخت چون اسبش تیسپا بود دیگه از هم اول اسب فهمید که این سوار این کاره نیست خودش اسبه خود سر شروع کرد به تاختن و چارنل رفت برادر به خیال اینکه تاشلی میخواست زودتر به ببر برسه اسبها را هی کردن و چهار نل دنبالش را افتادن و بالاخره به نزدیکی مخفیگاه ببر رسیدن تاشلی که جلوتر از همه بود واقعا میترسید که میخواست با ببر روبرو بشه رو ول کرد رفت بالای درختی که خودشو قیم کنه یه چند لحظهی نکزشته بود که ببر از مخفیگاش بیرون آمد. نهره کشان زیر همون درخت وایستاد. تاشتی تا ببر رو دید به خودش لرزید. تعادلش به هم خورد از بالای درخت افتاد رو پشت ببر. ببرم که تابه ها چنین بلای آسمانی به سرش نعیمده بود از تاشتی ترسید. دو پا داشت دو پا دیگه هم کرد و پا به فرار گذاشت هفت برادر وقتی این صحنه را دیدن خوشکشون زد از این همه رشادت و شهامت و شجاعت تاشلی اصلا تعجب کردن همجور منده بودن مات و مبهوت اونا فکر میکردن تاشلی پهلوان اونقدر بی بیباق و جسوره میخواد ببر سرکش و محارش کنه دویدن رو گفتن تاشتی پهلوان کشتن ببر برای شما مهم نیست افتخار کشتنش رو به ما بدین بعد از هر طرف ببر رو دوره کردن و کشتنش تاشلی پهلوان ببر رو که اینطور دید سری تکون داد و گفت کاش میذاشتین رامش کنم به جای اسب سوارش میشودم بعد تبار از شد و رفت به سمت قصر هفت برادرم پشت سرش می آمدن در راه هفت برادر تصمیم گرفتن خواهر خودشون رو به تاشتی پهلوان بدم. به قصد که رسیدن موضوع رو با تاشتی در میان گذاشتن تاشتی هم قبول کرد هفت شبان روز برای اونا جشن و پایکوبی کردند. تاشتی هم حاکم اون سرزبین شد